رفتی و با فراغت غم در دلم نشسته کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوا یکه یت هر دم بجوست جو یک فنهان شده دریغا از حافظه است نه رویت رفتی و با فراغت غم در دلم نشسته کشتی ما به دریا دینا خدا شکسته من دینا با یک کویت هر دم در دل جست و جویت به نهان شده دریغا از حاضر حسن رویت اشکم بسان دریا قلبم مثال آتش روحم زداغت ای گل گردی دزار و سر کش ای آف تاب روشن در سر زمین خاکی ای نا خدای کشتی در بی کران پاکی رفتی, رفتی و با فراغت غم در دلم نشسته کشتی ما به دریا بینا خدا شکسته من بی نبای کویت هر درم به جست و جویت به نان شده دریغا از حوز حسن رو అజ ము అరస్థా జారస్తా రఫ్ బ درشتی ما به دریا بینا خدا شکسته من بی نهای کوید هر دم به جست و جوید بینان شده دریغا از حاضر حسن روید مجروح و گشت قلبه هر کس کی دید دل رغود بودی با حسن خلق و یاد داغ أت کمر شکن بود پایان عمر من بود قلبم به خاطر تو پایان در بدن بود راضی او با فراغت غم در دل شکسته کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوای کویت هر دم به جست جوییت بی‌انان شده دریغا از ها ز حسن رودیت بینم تراب جاننت شاداب و پر تروبت ای گلچه‌ی شکوفته در لال زار رحمت بر ما چه مهربان بود مفتی خدا نظر جان الہان کلا علی بود از لال دارنیکان رفتی او با فراقت غم در دل ام نشاست کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوا ی تو یت هر دم وی جست جو یت تنان شده دریغا از حاصل نسرو یت بر دور ستان بگو دنیا وفا ندارد، جز درد و رنج و مهند، چیزی دیگر نبارد باران مهربانی، بارید و از روخ او، گلزار زندگی از طرش بیگشت خوش خوش بون رفتی او با فراغت غم در دل من نشسته کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوا از حوزه هاست نیرویت نام تو بر فراز این کاه کی شاندار شان یاد تر قرامی داری مو از دل و جان فردا ی محشر استو راضی بوَد خدایَت با اذن رب یکتا از ما بهون شفاعت رفتی, رفتی با فراغت غم در دلم آشاسته کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوای کویت هر دم به جست جوی یار بنان شده دریغا از هازد چشمان شیخ الاسلام جریان شد از هجران بر پیر حوزوارک چشممان ما چباران فرماچ نه ز رابون بود مفتی خدا نظر جان الها خلالی بود از لال زار نیکان رفتی و با فراغت غم در دل, دل من مشاسته چشمی ما به دریا بنا خدا شکسته من بینی نبای کویت هر دنگ جست جویت بنان شده در این ها از حاصل حسن رویت چشمان شیخ الاسلام گریان شده زه بر پیر, پیر حوض باران چشمان ما چوباران بر ما چه مهرابون بود مفتی خدا نظر جان الها کلا لی بود ازل زار نیکان تکبیر آتی اینا خدای ک رفتی رفتی در بھی خرانے پا کے رافتی مبار کرات غم دردم نشاستے کشتی ما به دریا بنا خدا شکسته من نی نہ با یکو یت ہر دم అజముల్ నవామే గలస్తాన్ గమ رفت, رفت از دیار, از دیار مستان. مستان رفتی, رفتی و با فراغت غم در دلن مشسته کشتی ما به دریا بینا خدا شکسته من بی نقای کوید هر دمگ جست و جوید به نان شده دریغا ماجور ہو گیا اشتال بے ہر کس کی دیدر و یت دل رغودہ بودی بہ بود بود حسن خلق و یات دغات کمار شکن بود پایان عمر من بود قلبم بخاطر تو پایان در بدن بود رفتی و با فراغت امدار سلام نشاست کشیه ما به دریا بنا خدا شکسته من بی‌نوای کویت هر دم بجوست جویت بنان شده در غا از هازه حسن ولیت بنم تراد جان ند شاد ابو تر تو باد ای غونچای شکوفت در لال زار رحمت فرمان چه مهربان بود مفتی خدا نظر جان علای کل علی بود از لال زار نیکان رفتی او با پات هر دم به جست و جوید به نان شده دریقات از حاضر حسن روید بردو ستان بگویید دنیا وفا ندارد جز درد و رنج و محنت چیزی دیگر نبارد باران من ربانی بارید و عمید از atrás begeşte خوش خوش گون رفتی او با فراغت غم دار دلم نشاسته کشتی ما به دریا بنا خدا داشته کاسته من بنا و یکو یت هر دم به تو جویار رهنم شده دریغا از هازه حسن رویت نامے تو بر فراز ان کہے کی شاندار شان یادے ترا گرامی داری موعز دل او جان فردا یہ محشر استو راضی بوَد خدایت با اذن رب یہ از ما بکن شفاعت رفتی, رفتی و با فراغت غم در دلم نشسته کشتی ما به دریا بینا خدا شکسته من بی نوای کویت هر دم به جست و جویت چشمان شیخ الاسلام گریان شده زهجران بر پیر حوز بارد چشمان ماد شباران به کلاله ای بود از لال زار نیکان